إن شاء الله إن شاء الله موفق واشيد موفق واشيد موفق واشيد إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب الادمین وصلى الله عدا سیدنا ونبينا بالقاسم محمد والا اهل بيته الطيبين الطاهرين المأثمین المكرمين، لا سيما على بقيه الله في الآدین. اللهم كل وليك الحجات ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه، في هذه الساعة و في كل ساعة. وليم محافظا بقائدا مناصرا ودليلا معینام حتی تسكنه اروکتا وعام وما فيها فیها تبیدا عباد الله ونفسی بتقب الله یا ایها الذين آمنوا اتقو الله من تنبر نفس ما قدمت لغد و الله این الله خبير بما تعملون شما ایز را و را به الهی سفارش میکنم مراقب باشیم گناه نکنیم و حاضر و ناظر ببینیم و بالاخره بدانیم اونچه انجام می‌دهیم ضبط زبط می شود. و توشه ما در آخرت خواهد بود ولتن بر ما قدمت لرد و در این زمین خیلی دقت کنیم خیلی مراقبت کنیم ببینیم که چه پیش فرستادیم در جلسه قبلی چه مصدق بودم وعده دادم بحثی در مورد معاد داشته باشم یک جلسه بحث شد در مورد یکی از خصوصیات قیامت و اما این امروز این مروز بحثم در یکی دیگر از مواقف قیامت است و اون موقف حساب است بر قیامت به حساب انسان رسیدگی می شود نکته اول ای این که آنچه چه چرده ایم در دنیا و حتی بعضی حالات نفسانی که در سینه های ما مکتوم است همه آنها مورد بازخواست قرار میگیرد امیر در دواء کمیل از میکند کند کل سجایتین امر صدیف وات هلیکرام من خدایا هر چی کردم هر عمل زشتی دستور دادی که فرشتگان زد کنند که هم قاتبینه و علاوه بر آن خودت هم ناظر بودی میدیدی مراقب بودی و چیزهایی میدانستی که بر فرشتگان مامور مخفی کردی از باب لطفی که به من داشتی حتی نخواستی فرشتگانی که موكر بر منند از اون کارهای زشت متطرق شوند مکنن ترقيب علی یم مرائهم و شاهد لما ما خفیا عنهم پیغمبر اکرم به اباظر میفرماید یا اباظر حس ابن قبل ان تحسد اباظر قبل از اینکه روز قیامت فرارسد و ترا در موقف حساب نگه دارند و به حسابت برسند خودت به حساب خودت برس خودت رسیدی کن از کارهایی که کردی و از آنچه که مورد بازخواست قرار خواهی گرفت. من یکی دعای براتون میخونم و نبع الموازین القیست بیوم القیامة فلا تظلم نفس الشیع و اینکانم اثقال حبت مل و تینا به و کفا بنا حاسدین ما میزانهای قسط و عدل را در قیامت قرار میدیم دیم میکنیم می کنیم. هیچ کس به هیچ کس ظلم نخواهد شد و اگر کسی به اندازه دانه ای از خردل چرده باشد ما اون عمل رو بر می گردانیم و حاضر میکنیم و ما برای حساب کافی هستیم در آیه دیگر بیفرمد كل انسان الزمناه طائره فی انقه و نقرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا اقرأ كتابك چفا نفسك اليوم عليك علیک نامه عمل هر چسی را در مقابل چشمش در قیامت قرار میدهیم تمام اون چی چرده است می بینی می بیند و به او می گوییم این نامه عمل توست این پرونده عمل ده ها سال توست بخون نام اطراب بخون پربنده اطراب و عرض کنم که کفا به لپسی کل یوم که حسی با خودت حسابجر باش خودت می توانی بفهمی که آیا بهشتی هستی یا جهنمی هستی در جای دیگر در سوره ادازل زله می فمن یعمل مثقال دررت خیرم و من یعمل مثقال دررت شرم یره به اندازه سنگینی زره هرچی از کار خوب چرده می بیند هرچی از کار بد چرده می بیند رسول الله در همون بیانی که خطاب به عوازر عباز، به داشت می که زن قبل ان توزن قبل از اون که تراب یا عملت را وزن کنند خودت وزن کن خودت را وزن کن ببین بعد از یک عمر اینا که دوران پیری رسیده وزنت چقدر است واقعا الان بنده هستی مطیع هستی یا نیستی دقت کن زن نفسک و تجهز از لیل عرب علال اکبر یوم لا تخفا من خافیه خودت رو آماده کن برای قیامت زمان که تمام زندگی تو بر خدا عرض شود و هیچ چیز مخفی نخواهد شد هیچ چیز مخفی نخواهد شد که وقتی انسان می بیند می گوید مالها بالکتاب لا یقادر و شغیرتم ولا کبیرتم الا عجیب این چه نامه این چه تربنده ایست هر چه کردم از خوچک و بزرگ تمام اینجا ضبط شده برادران خواهران ما یه صحنه این در پیش داریم مراقب باشیم نگاه های ما ضبط می شود حتی حالات نفسانی ما موید حساب قرار میگیرد. البته این غیر از نیتی است که مثلا کسی قصد میکند گناه بکند و نمی کند، این به صرف این قصد مؤاخذه نمیشه اما حالات نفسانی کینه‌هایی که در سینه‌ها انباشته شده اون کینه‌ها مورد محاسبه قرار میگیرد. نشارمد ان دو ما فی انفسكم او تخفو و به الله اون در درون قلب شماست چن آشگار کنید چه مخفی کنید خداوند محاسبه میکند. یعنی اونچه در سینه هم مخفی شده و ظاهر هم نشده مورد معاخذه و حساب قرار میگیرد و باز می قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلم الله آیه‌ای در اینجا براتون میخونم خیلی قابل توجه است باتکند هست وان آیین اس ولا تحسبن الذين يفرحون به ما و یحبون ان یحمدو فلا تحسبن بمفازة من العداب بله هم عذاب قلیم رسول الله اونهایی که هر کاری انجام می خوشحال هستن و فخر می مباهات می کنن یفرحون به ما این قدر از خودشون راضی هستند و عجب دارند هرچه می به, به عمل و به اون کار خوشحال میشان یا یفرحونه به ما و یحبونه ان یحمدو به ما دم یفعدو و دوست می دارند که کسی تعریف کند از اونها از او قدر تعریف نابجا و بی مورد دوست می دارند چسی مدهش بگوید سنایشون بگوید مده کند به چیزی که در اونها نیست مدهی دروغین، انسانی متمدلق مدهی می کند به چیزی که در طرف نیست فرمود اگر چسی از این مدهی خوشحال بشود و دوست بدارد این را یحبون ان یحمدو بما لم یفعلوا توجه میکنید اینها فلا تحسدن لهم من العذاب و لهم عذاب علیم فیچ نکنی که اینها از عذاب الهی میتونن فرار بکنن نه عذابی درناک در انتظار اونهاش این عذاب دردناک برای چی برای اینکه این آدم خوشحال شده از اینکه مده بیجا از او کردن تعریف بیجا کردن نه حتی اگر كسی مدهی کرد به دروغ به ناحق و بی اساس مده و صنای شما را گفت اگر نمیتونید دهانشو ببندید اقلا اعتراضی بکنید و بالاخره اگر مجالی برای اعتراض نیست در درون خودتون خوشحال نشید نگیب خوب تعریفی از من کرد سنایی به من گفت این خوشحالی فرمود که مورد معاخذ قرار می گیرد فلا تحسبنهم به مفازت من العباب سخن دیگری که در مورد حساب هست این که ما از آیات و روایات استفاده میکنیم این اعمالی که ضبط شده آیا خداوند با این اعمال چجور بر خود میکنه؟ آیا بنده اش با تمام اینها با جزئیات می میکند؟ به اصلاح از ماست میکشه یا یکدی آسان میگیرد حساب را ما از روایات و از آیات استفاده میکنیم که دو نوع حساب هست هم حساب یسیر هست حساب آسان و هم حساب سخت است به تعبیر سوء الحساب این را دقت کنید که بسیار مهمه <تصفح> مثلا در بعضی از آیات این جور آمده که میفرماد که ای من قریهن عتت ان امر ربها و رسوله فحاسبناه حسابا شدیدا و از زبناها عذابا نکرا فداقت و بال امرها و کان آقبت و امرها خسرا می فرمان چه انسانهایی که در قریه ها زندگی کردند از فرمان خدا سر کردند و از فرمان صرفی چی کردند اینها رو ما حساب سختی می کردیم حاسبناها حسابن شدید و عذابناها عذابن نکرا عذابی که هر می دید عذابنش از زشتی و از سختی فضاقت وبال امرها و کان عاقبت امرها خسرا خدا من میفرماد ادعی هستند اینجوری ما باشون رفتار کردیم چون آنها رو سخت عذاب کردیم و حاسبناها حسابا شدید حساب سختی کردیم و یا در آیه دیگری میفرماد والذین لم سجیب له آنان که اطاعت نمیکنند فرمان خدا را اجابت نمیکنند لو أن لهم فی جميعا و مثله معه به اینها اون چنان گرفتار میشن که اگر اون چه در زمین از آن آنها بود و یا بیشتر اینها برای نجات از عذاب اون رو میدن می, می کنند که آزاد بشن بعدن میفرماد فرماد اولائی هم سوء الحساب و معواهم جهنم و بئس المهاد با اینها ما محاسبه می حساب سختی از این حساب سخت تعبیر به سوء الحساب شده سخت حساب می کنیم حساب رسی میکنیم کنیم از جزئیات معاخذه می سؤال میکنیم حاداش عمل زشت کمشون را هم چپ دستشون میگذاریم این یه مرحله برای ادعی سوال حساب است، اما برای ادعی دیگری نه وقت ظهر داخل شد من قسمت دیگر رو در خطبه دوم عرض خواهم کرد بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أب القاسم محمد <تصفيق> وعلى اهل بيته أوسيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله شماع الزراب تقوی الهی سفارش می کنم و همچنین خودم را بکوشیم برای خداوند حریم قائل بشیم بکوشیم در چشم مقابل دید خدا و در محضر خدا گناه نکنیم خدایا به ما زاد توشه تقوا را مرحمت بفرما بسم الله الرحمن الرحیم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أفقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس وشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه وَمَنْ يَأْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أب القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وامينك وصفيك وحبيبك وخيارتك من خلقك وصل على علي أمير المؤمنين وبصي رسول رب العالمين وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وصل على صبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة صلى على أمة المسلمين علي بن الحسين محمد بن علي وجاafari بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الصالح الهدي الأعظم اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه. و صحب المخرجه و اوصع منهجه و من نصاره و عوانه و الضاب بین آنه و المستشفدین بین یدائه به الله بعض شما اعز را خدم را به تقوى الهی سفارش می کنم اتق الله حق تقاته قاته اونطور چه باید مراعات حرمت الهی رو بکنید ادب رو مراعات کنید در مقابل خدا بی نکنید جسارت نکنید و اگر هم جسارتی چردید بوزرخواهی کنید و اما قسمت دومی که بعد دادم در این خود به عرض کنم نسبت به بعضی ها خداوند با سهولت و آسانی با آنها رفتار می کند خدا می فرمد یا ایه الانسان اینکا کابهن الى ربک کبحن فملاقیه فمن اوتي کتابهو بیمیمه فصوفیها سب حسابا یسیرا و ینقل ویلا اهلهی مسرورا إنسانها سنها شما تلاش میکنید عملی انجام میدهید و به سوی لقاء الهی حرکت میکنید آنان که نامه عملشون به دست راستشون داده شود و صوفه حسابا یسیرا حسابن خداوند با آنها حسابی آسانی خواهد کرد یعنی با اغماز گذرا دیگه مورو از ماس نمیکشه خدا دونه دونه ریزه ها رو مطرح نمی و ماخذ نمی کنه یه ها حسابا یسیرا را به آسانی به حساب آنها رسیدگی می کند این کسانی هستند که نامه عملشون دست راستشون داده شده و اینها ها ینقدب و ایرا اهدهی مسرورا الحمدلله در این موقف ما سرق راز از موقف خارج شدیم در وضع میگونیم وقت شستن دست راست اللهم اعتنی کتابی بیمینی و الخلدف الجنان بیساری و حاسب نیه صابن خدایا نامه عمل ما رو در قیامت به دست راستم بده اعتنی کتابی بیامینی و الخلدف الجنان بیساری سند خلود در بهشت را هم به دست چکم بده و حاسب نیحسابن یسی را و با من به آسانی محاسب کن سلوات قدر در روایات آمده چه خداوند با بنداش تا سن چهل با یک آسانی و وسعت برخورد میکند لفی فسحت من امره یعنی زود میگذره با یک پشیمانی او رو میبخشه اما بعد از اون که به سن چهل رسید خداوند به دو فرشته مأمور میگوید که قدر دا علیه و شدت دیگه از حالا به بعد با شدت و غلظت با این آدم رفتار بکنید دیگه گذشت سادگی نیست وقت با علیه صغیر عمله و کبیره هر هرچه میکند از کوچک و بزرگ همه رو ضبط کنید آقایان و خانوم هایی که چهل به بعد رو دارن حواسشون جمع باشه، مراقب باشید دیگه از اون چهل به بعد دیگه سراشیبیست داریم یوش یوش به لقاء الله نزدیک میشیم به قبر نزدیک میشیم دیگه خیلی جسارت است و جهالت است که باز هم انسان گناه بکند می شرمد که قل را علیه و شد دار. از این استفاده می که گناهانی هم که انسان انجام میدهد یک نوع نیست بعضی از گناهان هست که دنبالش غذا به خداست خیلی مهمه گناهی می کند چه دنبالش غذب خداست و خود رو باید برای آتش آماده کند اما گاهی گناه در این حد نیست حتی انتجتن و کبا ارماتان هونه انت مکفت انکم سیعات گناهان ریزی کسی انجام داده به صرف این گناه غضب خدا دنبالش نیست حالا ما از کجا بفهمیم که این گناه از چه است گناهی است که دنبالش غضب خداست یا نیست؟ در سوره همدی میگیم غیول مغوب علیهم خدایا ما روز از زمره افرادی که مورد غضب تو هستند قرار نده؟ نبا من چ برم با تو صحبت میکنم تو بر من غذب ناک و خش میگن هستی که بر من امیر در این زمینه یه راه رو باز کردن برای ما میفرمان که خداوند چهار چیز رو در چهار چیز مخفی کرده غذبش رو در گناهان پنهان کرده نمیدونه انسان کدام گناه هست که دنبالش غضب خداست بنابراین میفرماد شما راقب باشید هیچ گناهی نکنید شاید همین گناهی که خدایی نکرده تصمیم گرفتی انجام بدی دنبال این گناه ولو به نظر تو کوچک میاد همین غذا خدا دنبالش باشه بعدن میفرماد خدا رضای خودش رو هم در طاعتش پنهان کرده حتی الامکان سعی کنید طاعت الهی رو ترچ نکنید هر عمل خیری، هر کار خوبی، هر عبادتی انجام بدید شاید رضای خدا در همین عملی باشه که به نظر شما نمیاد شاید یک سلی رحمی که چردید به سوی قاتل رحم بلند شدی، هدیه ای بادی، احوالشو پرسیدید شاید رضای خدا در همین سلی رحم باشه خدا از تو راضی شده باشد پس هیچ عبادتی را هم حتی امکان شما هرچه نکنید. بعدا میفرماد ولیش را هم خداوند در بین بندگانش پنهان کرده ولی خدا كی هست اون کسی که حرمتی خدا برای او فوق العاده قائل است اون کسی که غضبش غضب غذاب خداست خوشحالیش خوشحالی خداست ولی خداست خدا پنهان کرده اون کی هست؟ در جمع ما نمازگذاران ولیه خدا چند هستند؟ هستن؟ نمیدونیم در یه جمع دیگری نمیدونیم لذا میفرماد که سعی کنید هیچ بنده از بندگان خدا رو اهانت نکنید شاید همین ولیه خدا باشید یه آدم پاق رحمه لباس من اصلا به حساب نمیاد شاید همین ولی خدا باشه فرمود مراقب باشید اهانت نکنید به بندگان بنده ای از بندگان خدا در یه روایتی سزد صادق به اصحابشون فرمودند مالکم تستخفونه بنا چه شده که شما این قد به ما اهانت میکنید ما در نظر شما سباکیم مردی از اهل خراسان گفت یبنه رسول الله شما عزیزترین انسان ها هستید در نزد ما چطور ما به شما احانت جسارت میکنیم فرمود خودت به من جسارت کردی خودت منو تحقیر کردی گفت آقا کی من شما رو تحقیر کردم حضرت فرمود یادت هست در فلام نل سوار بر مرکبت بودی در بیابان رسیدی به یه نفر که او از بندگان خوب خدا بود او از ولی از اولیاء بود او با فلانی منو یه مقدار به اندازه یه میلیا بیشتر پشت شطورت بنشون پشت مرکبت بنشون منو هم سوار بکن خسته شدم یادت هست اعتلاع نکردی ورد شدی مجرد تو نمیدانی اگر کسی ولیگی از اولیاء خدا را و از دوستان ما را احانت کند به ما احانت شده تو به من امام صادق جسارت شدی الله اکبر خدا را هم در بین بنگانش پنهان کرده همه مردم رو احترام بکنیم همه اونهایی که در دایره ایمان هستند همه رو احترام کنیم به هرچس بر خود میکنیم بگیم شاید این ولی خدا باشیم اهانت نکنیم توهین نکنیم تحقیر نکنیم کلمه زشتی نگیم و چهارم هم فرمود که خداوند اجابت رو هم در دعاش پنهان کرده کدوم دعاست که حتما مستجابه نمیدونیم بنابراین فرمود که حتی الامکان به هر دعایی توجه کنید دعاتونو بکنید شاید اجابت خدا بر همین دعایی باشد که پنهان کردید و اما جمله بیگری در مورد حساب بگویم در روز قیامت انسانهایی مطالبه گرمشن میان دامن آدم رو میگیرن مدار رحمت کنه شهید رجایی میگفت وای بر من اگر به رو وقتی روز قیامت نمیدونم یازده میلیون چه به من رأی دادن اینا بیان دامن منو بگیرن بیان رجاعی چی کردی؟ اما سوان جمع باشه مطالب گرم داهی حضرت مهدی میاد دامن ما رو میگیره هروم با اخز می کنه در قیامت می فرما چرا خمس رو ندادی مجد تو نمیدونی که خمس متعلق به 사다ت است و ماست، به من است چرا خمس رو ندادی راها نمی امام زمان ما رو 사다ت ما رو ما دامار دامن ما رو می گیرن ما میکنن مطالبه میکنن پیغمبر اکرام پشا به معراج دیدم یه نفر به عرش الهی چسبیده داره ناله میزنه شکایت میکنه از خیشابندش میگه خدایا به داد من برست فلان خیشابند به من ظلم کرده. گفتم جبرایل فاصله بین او و بین اون خیشابندی که ازش شکایت میکنه چقدره گفت بعد از چهل پشت به هم میرسن این خلق خیشابند دوره دو برادر بعد از یه پشت میرسند دو پسر امو بعد از دو پشت میرسند این آدم بعد از چهل پر میرسه به خیشابندی که از شاکیز در عین حال داره شکایت میکنه و داد خواهی میکند ببینید این آیه شریف عجیب است یوم یفر المرع من اخیه و امهی و عبیه صاحبته و بنی له كل امرئ منهم یوم اذا شان يغني عجيبه در قیامت طرف میرسه به مادرش اما به عوض چه خوشحال بشه خب مادر بعد از این طول فراق در عالم برزخ خوشحال نمیدینمت به محض اینکه مادرش رو میدینه فرار میکنه در میره از دست مادر فرار میکنه از دست پدر فرار میکنه از دست فرزندانش فرار میکنه از دست برادرش فرار میکنه این قرآن دیگه ها سخن من نیست خوندم براتون از دست خانمش فرا فرار میکنه خانم از دست شوهرش فرار میکنه اینا چرا فرار میکنن؟ مدیونن؟ مدیونن بینام الان باید امروز به حسابشون بسید دیگه بیشه میگن وای فرار میکنه در میره اما جای فرار نید اینل فرار نیست همه رو باید جواب داد همه رو باید جواب داد اگر حقی از پدر را کردیم باید جبران کنیم چه پدر زنده است چه مرده است اگر مولده هم باید براش دعا کنیم حق دعا داره همین طور ما در حق فرزند روزی کردیم همین طور حق برادر روزی کردیم همین طور حق همسر روزی کردیم همین طور جواب یاد داد يوم الحساب خدایا بر همه ما رحم کن خدایا ما را مشمول افوت قرار بده دایا ما را به وظائفمون آشنا بگردان دلایا توفیق محاصره نفس تا نمردیم به ما کرم بسم الله الرحمن الرحیم بالعصر ان انا الانسان نفیق و عصر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اتواصل بالحق وتواصل بالصبر صدق الله العلي العظيم